هشت و سی و سه. آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگون سفری می‌کرده و ها و بعض بزم‌های شبانه خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکنده شدن دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و زمندان گفت که نمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانه‌های شهری و املاک روستایی کرده که آنها را به اجاره داده است و با همه ورخرجی ها باز هم با احتیاج رفتار کرده و همه دارایی های خویش را یکجا به باد نداده است که تا آخر عمر با پشیمانی و رنج روزگار بگذراند به هر حال زندگی معمولی خود را ادامه می رهد و فقط با پذیرای یک میهمان هر شب را میگذراند. بدین معنی که نخستین غریبه‌ای که وارد شهر میشود، او را میهمان میکند و به او هم میگوید که فقط امشب را میهمان هستی و فردا باید دنبال کار خود بروی. خلیفه سخنان ابوالحسن و فهم و شعورش و آینده‌نگری‌اش در سن جوانی برخلاف سایر جوانان و نتیجه‌ای که از تجربه طرغ خود در مورد دوستان بی حقیقت خود گرفته بسیار از او خوشش آمد و او را تحسین کرد و گفت می میکنم که به خوشبختی و زندگی تو حسرت میبرم و تو تنها کسی هستی در این دنیا که هر روز زندگی را با هم نشنی انسانی میگذرانی که او را آدم درستگار و خوبی می میدهی و میتوانی حرفهای دل خود را با او بزنی و او هم سخنان خود و زندگی خود را برای تو بازگو کند ولی مثل اینکه بسیار سخن گفتیم بهتر است شرابی بنوشیم به این ترتیب خلیفه و ابوالحسن از یکدیگر پذیرایی میکردند و از هر دری سخن میگفتند و مینوشیدند تا اینکه خلیفه به بهانه اینکه از سفر آمده و خسته است به ابوالحسن گفت که احتیاج به استراحت دارد و چون احتمالا فردا صبح زودتر از تو از این خانه خواهم رفت میخواستم قدرشناسی خود را از مهربانی و صفای تو نشان دهم و مایلم بدانم به چه طریقی ممکن است خدمتی انجام دهم هرکس در زندگی خواستههایی و یا نیازهایی دارد تقاضا دارم به من بگویی چه آرزویی داری شاید بتوانم قدمی برای تو بردارم خواهش دارم بدون رو در بایستی برایم بگو اگرچه من بازرگانی بیش نیستم ولی دوستانی دارم که کارساز هستند ابوالحسن در برابر سخنان خریفه که او را هنوز با زرگان موسیلی می شناخت ابراز شادمانی و تشکل کرد و گفت خدا را شکر نیازی و کاری ندارم و با همین وضعی که دارم کاملا خوش و از چیزی هم در زندگی رنج نمی برم. یعنی امری وجود ندارد که مرا آزوده سازد فقط از مهربانی بیشائب تو که حاضر شدی دعوت مرا برای یک شب هم نشینی و خوردن لقمنانی با من بپذیری یک دنیا سپاس دارم. فقط در زندگی یک چیز مرا نخوشنود می سازد و آنین است که مسجد محله ما پیش نمازی دارد که متولی آن مسجد است و مردیست ظاهراً روحانی و دارای ریش و امامه اما بسیار ابوس و ترش روست و آدم ریاکاری است. این مرد و چهار شیخ دیگر محل که از همان قماشند هر روز در خانه همان پیشنماز جمع می شوند و در آنجا علیه من و اهل و محل بهتان و افترا درست میکنند و نسبتهای ناروا و خلاف واقع به مردم محل می دهند و پشت سر آنها حرفهای بدنام کننده میزنند در نتیجه بین مردم و همسایگان نفاق و دگانگی پدید میآورند و آرامش و آسایش و همسایگان را به هم میزنند یک روز مردم را تهدید میکنند روز دیگر آنها را به باد دشنام میگیرند و خود را حاکم مطلق سرنوشت مردم می دانند و به امور داخلی و افکار و عقاید شخصی مردم مداخله می کنند و مردم باید مطیع حوث آنها که هر روز تغییر شکل می دهد باشند و اهل محل از مداخلی ناروای آنها به تنگ آمدند آنچه که من و مردم خواستاران هستیم این است که این آقایان به قرآن خانی خود پردازند و در امور دنیاوی مردم و آسایش روزانی آنها مداخله نکنند. و بگذارن تا مردم با آرامش زندگی خود را دنبار کنند خلیفه گفت خوب تصور میکنم میل داری به این وضع نهانجا پایان دهی ابوالحسن گفت خوب پرد زدی و تنها آرزویم این است که فقط یک روز به جای حارور و رشید می خلیفه پرسید در این صورت چه اقدامی می کردی؟ گفت آنها را مایه عبرت دیگران می به طوری که مردم راست کردار و متدین، و بیریا از اقدام من خوشنود و راضی می شدند خلیفه پرسی چه اقدامی در نظر داری؟ ابوالحسن پاسخ داد به هر کدام از چهار پیر مرد یکصد ضرب تازیانه و به پیشنواز و متولی مجلس چهارصد ضرب تازیانه می نواخدم. تا این آنها بفهمند از آن پس بین مردم ایجاد آشوب و اخلال نکنند و آرامش محله را برهم نزنند خلیفه بسیار خوشنود شد او که سلطان حادثه جویی بود این فکر را پسندید و به حسن گفت من فکرت را میپسندم زیرا از مغز آدمی خیراندیش و راست که دار سرچشمه می‌گیرد آدمی که حاضر نیست گناه بندانشان را بدون کیفر بگذارد دارم که این فکر جامعه عمل بپوشد به نظر می‌آید چندان هم غیرعملی نباشد تصورم بر این است که خلیفه هم با کمال رغبت و میل اختیاراتی خود را برای 24 ساعت به تو خواهد داد، ولی مشروط بر اینکه او مطمئن باشد تا به نحو صحیح و با حسن نیت و عادلانه از آن استفاده خواهی کرد. ابوالحسن حسن گفت معلوم می شود تو این فکر مرا احمقانه ای که به من می خندی و خود خلیفه هم که از آن آگاه گردد لابد او هم همینطور خواهد خندید. اما به هر حال این وسیله که می توان خلیفه را از آنچه در زمان حکومت او با دست امام مسجد و دستیارانش صورت میپذیرد آگاه کرد و ممکن است خلیفه هم آنها را کیفت دهد. خلیفه گفت خدا نخواسته باشد که من به تو بخندم به کسی که آن همه به من محبت و یک رنگی نشان داده و پذیرایی بیریا کرده است. مسلمان خلیفه تو را میپسندد اما شب به نیمه رسیده و هنگام استراحت است. ابوالحسن گفت من مانع خواب شما نمی‌شوم آخر هنوز مقداری شراب در تنگ باقی است آن را بنوشیم و از تو خواهش دارم چون تا صبح زودتر از من از این خانه بیرون می‌روی در را پشت سر خود ببند خلیفه هم گل داد و بچوی شراب و دو جام را برداشت یکی را برای خود و یکی هم برای ابوالحسن لبریز از شراب کرد و گردی را که همراه داشت در جام شراب ابوالحسن خالی کرد و گفت این جام را به نشانی تشکر از تو می نوشم جام دیگری را به ابوالحسن داد و گفت پذیرایی تو بسیار عالی بود و شب خوبی را گذراندم این جام را بگیر و بدوش ابوالحسن جام را گرفت و برای ابراز تشکر از او تمام آن را یک بار نوشید به محض نوشیدن داروی خوابابر ابوالحسن به خواب سنگینی فرو رفت خلیفه به غلامش دستور داد تا ابوالحسن را روی دوش خود گذاشته و به قصد خم کند خودش هم دنبال او را افتاد اما در خانه را نبست تا قلام هنگام مراجعت بداند به کدام خانه برگردد خلیفه از در مخفی وارد تالار قصد شد و به افسران خود که انتظار او را در آنجا میکشیدند پی بست انگاه دستور داد رختهای ابوالحسن را بیرون آوردند و او را در بستر خلیفه جای دادند خلیفه تمام درباریان را احضار کرد و به آنها گفت فردا صبح همه شماها باید در انتظار بیدار شدن این شخصی که در بستر من خوابیده است باشید و گوش به فرمان باشید. درست مانند آنکه من خودم به شما دستون می دهم. او از فردا صبح خلیفه هارو و رشید است و تمام احتراماتی را که نسبت به من به جای میآورید باید برای این مرد بهجا آورید و از هیچ خدمتی و احترامی فروگذار نکنید. درباریان و افسران دستورات خلیفه را با دقت گوش کردند و فهمیدند که خلیفه خیال دارد برای تفریح خود چنین نقشه را به موقع اجرا گذارد همه ترزین کردند و دنبال کار خود رفتند سپس خلیفه به نخست وزیر خود جعفر گفت فردا صبح هنگامی که شرف یاب می تعجب مخوان زیرا به جای من مردی را می که در بستر من خفته است این مرد لباس مرا خواهد پوشید و بر تخت سلطنت من خواهد نشست و تو باید تصور کنی با خلیفه واقعی روبرو رو هستی همان تشریفات و احتراماتا که برای من به جای می باید درباره او رعایت کنی و هر دستوری که میدهد مانند دستور من اطاعت کن به تو دستور می دهم حتی اگر این مرد خواست تمام اموال و پولهای خزانه را به کسی ببخشد میتواند. توجه کن دستوراتی را که به تو دادم به کلیه امیران و درباریان و خدمتکاران اطلاع بده و همه باید زیر فرمان او باشید به طوری که او معتقد گردد که خلیفه واقعی است و هر نوع فرمانی دهد بیچن چرا قابل اجرا خواهد بود من میل دارم که این صحنه جالب را تماشا کنم و ببینم این مرد در مقام خلافت چگونه های خدا عملی می‌سازد و نمیخواهم با نافرمانی کسی کمترین خللی به این برنامه وارد شود بعد از آن خلیفه به خوابگاه دیگری رفت و دستورات کامل به رئیس نگهبانان داخلی قصر و رئیس خاجه ها داد و سفارش کرد خلیفه را از روزها دیگر زودتر بیدار کنند تا از نخستین مرحله شاهد این منظریه تماشایی باشد. نخست وزیر هم مرخص کردید و به خانه خود رفت. رئیس نگهبانان هم دستورات خلیفه را به کلیه مامورین ابلاغ کرد و خلیفه هم در اتاقی که از آنجا حرکات و دستورات ابوالحسن را میدید و سخنانش را میشنید، پنهان شد و از لای در به تماشا پرداخت. قبل از بیدار شدن ابوالحسن تمام درباریان بلند پایگان طبق برنامه روزانه به دربار آمدند و هر یک در جایگاه خود قرار گرفتند و در کمال سکوت منتظر بیدار شدن خلیفه بودند. با سپیده صبحگاهی و زمان نماز صبح افسری که نزدیکتر از دیگران به تخت بود، پارچههایی و که آافشت به محلول سرکه بود جلوی بینی ابوالحسن نگه داشت و لحظه ای بعد ابوالحسن حسن ای کرد و بیدار شد. سرش را به اطراف حرکت داد و چشمان خود را گشود و با تعجب بسیار مشاهده کرد سقف خوابگاه با نقاشی های دلپذیر و رنگ های زیباه آرایش یافته و فرشهای ابریشمی ایران کف تالار را زینت بخشیده. و بانوان جوان زیبا با ابزار موسیقی در دست در دو طرف بستر او ایستاده اند. بسترش در تالار باشکوهی قرار گرفته و خاجه سیاه درباری با رخت های ملیل دوزی شده با حالت احترام آماده به خدمت به صف ایستاده اند. وقتی چشمان عوالحسن به لحاف مروارید و الماس دوزی شده افتاد و لباس سلطنتی را که در کنار بستر آویزان بود از نظر گذراند و دستار مخصوص خلیفه را که تاجی بر میان آن بود دید، بسیار تعجب کرد. ابوالحسن از دیدن چنین منظری با حیرت به خود گفت: من خلیفه ام بعد بلافاصله گفت: نه، حتما خواب می‌بینم. این اثر صحبت‌های دیشب است که با میهمان خود داشتم. دلم می‌خواهد یک بار به جای خلیفه باشم. این را گفت و می‌خواست دوباره بخوابد که رئیس خواجه‌ها گفت: یا امیرالمؤمنین انگام نماز صبح هست نمازتان دیر خواهد شد این سخنان را رو شگفتده کرد و دوباره از خود پرسید من خواب می بینم حتما خواب هستم آنگاه چشمان خود را بس و با خود گفت دلیلی ندارد که تردید کنم بلافاصله رئیس خاجه ها گفت یا امیرالمؤمنین. المومنین آفتاب در حال نمایان شدن است و نمازتان دیر می شود نمی خواهم جسارمت کنم هر روز در این موقع نمازتان را میخواندید در این موقع عبالحسن گفت من به خوبی حس میکنم و صدار بروشنی میشنمم پس بیدار هستم چرا فکر میکنم خواب میبینم در این هنگام بانوان زیباروی درباری دادید که با لبخن به او نگاه میکنند و گروه دیگری از بانوان را دید که در کنار بستر او به او سجده و آغاز روز خوشی را برای او آرزو میکنند گروه اول بانوان به نواختن سازهای خود پرداختند و نقمه یه شادی بخشی را آغاز کردند به طوری که ابوالحسن به حالت وجد و طرب درآمد. آنگاه برای اینکه مطمئن شود آنچه را در اطرافش میبیند واقعیت دارد چشمانش را مالید و به خود گفت این قصر زیبا و این تشریفات مالکیز. در این وقت رئیس خوجه ها با احترام فراوان گفت یا امیرالمؤمنین وقت نماز صبح گذشته و تمام امیران و درباریان در اتاق انجامن رایزنان سلطنتی در انتظار شما هستند تا با حضور شما به کار روزانه مشغول شوند. با شنیدن سخنان رئیس خاجه دربار ابوالحسن احساس کرد نه در خواب است و نه در عالم بیداری و کاملا مبهوت شده بود و از رئیس خاجه ها پرسید تو کیستی؟ تو اجتباقا مرا به جای کسی دیگر گرفته ای؟ رئیس خاجه که خلیفه او را خوب درس داده بود و می دانست چگونه نقش خود را ایفا کند، پاسخ داد یا امیر المومنین. شما می مرا آزمایش کنید. شما سرور من هستید. شما نه تنها امیر هستید، بلکه سلطان جهان و همه مردمید. چاکر پس از سالها خدمت گذاری، چگونه ممکن است شما را فراموش کرده باشم. در حال که تمام عمرم را زیر سایه سلطان به خوشبختی و دعاگویی گویی گذرنده هم حقیران است که امیرالمومنین رویای بدی داشتند ابوالحسن از سخنان رئیس خاجه ها چنان خندهاش گرفت که از پشت روی متقا افتاد خلیفه هم از دیدن این منظره از خنده روده شد و آنچنان با صدای بلند می‌خندید که ترسید صدای خندهاش را ابوالحسن بشنود ابوالحسن بعد از خندیدن فریاد کشید و از غلام سیاه جوانی پرسید: بگو ببینم من کیستم؟" غلام کوچولو پاسخ داد: "شما خلیفه مسلمین." ابوالحسن گفت: "تو دروغ میگویی." آنگاه از بانوی جوانی که از همه به او نزدیکتر ایستاده بود، پرسید: "من کیستم؟" وضو خواست، انگشت او را گاز بگیرد تا به حمت است یا بیدار. بانوی جوان جلو آمد و انگشت ابوالحسن را به سختی گاز گرفت. آن وقت فریاد ابوالحسن بلند شد و گفت حتماً بیدارم ولی هر طور حساب می کنم با عقل درست در نمی آید آخر چگونه دیشب را در خانه خود خوابیدم و اینک در قصد خلیفه هستم و خلیفه هم شده هم و از همه مهمتر همه در خدمت من هستند چگونه چنین واقعی امکان پذیر است اما من که می دانم خلیفه نیستم پس چطور همه شواهد دیگر دلالت بر خلیفه بودن من می کند؟ آیا جادو و یا معجزه‌ای رخ داده است؟ من که سر در نمی‌آورم، آیا واقعا من امیرالمؤمنین هستم؟ تمام بانوان زیبایی درباری پاسخ دادند: البته شما امیرالمؤمنین هستید و مایه شگفتی همگی است که شما این حقیقت مسلم را تردید می‌کنید. ابوالحسن پاسخ داد: این چه سخنی است که می‌گویید؟ من خودم را خیلی خوب می‌شناسم. هارون الرشید، از لای درک این منظره را می‌دید، آنقدر می‌خندید که نزدیک بود بی حال شود. هنوز عبال حسن پای خود را رو روی زمین نگذاشته بود که تمام درباریان و امیران و بانوان به او تهنیت گفتند و به سجده روی زمین افتادند. عبال حسن با خود می‌گفت: خداوندا من در وضعیتی هستم؟ کجا هستم و چه پیش آمدی رخ داده که مرا امیرالمؤمنین می‌شناسند؟ وزاری همه لباس رسمی سلطنت را به ابوالحسن پوشاندند و زیر بازوی او را گرفتند و دستار سلطنتی بر سر او گذاشتند و او را به سوی تالار انجمن رایزنان سلطنتی هدایت کردند. پس از آنکه ابوالحسن در روی تخت سلطنتی جای گرفت، وزیر جعفر پیش آمد و جلوی تخت زانو زد. خلیفه هم قبل از آنکه ابوالحسن به این تالار بیاید، متور پنهانی به این تالار آمده و در اتاقی از پشت پنجره اوزار را تماشا می کرد و لذت می برد. وزیر گزارش کارها را به آگاهی ابوالحسن رساند. ابوالحسن که رفتار نخوص وزیر و احترامات او را نسبت به خود دید، دیگر یقین کرد که امیرالمؤمنین است و کاملا باورش شد که دیگران دروغ نگفتند. در همین موقع، نخستوزیر وزیر به عرض که کلیه وزیران و امیران، در پشت در منتظرند تا امیرالمؤمنین مومنین اجازه به آنها دهند. در این هنگام ابوالحسن حالت و قیافه شاهانه و آمرانی به خود گرفت و گفت بگویید داخل شوند. نخست وزیر هم به رئیس نگهبانان اشاره کرد که وارد شوند. هنگامی که در را گشودند وزیران و افسران عالی رتبه و درباریان با لباسهای زربخت به ترتیب مقام و رتبه خود یکخواهی یک در پای تخت سلطان زانو می زدند و سپس در جایگاه مخصوص خود می نشستند. بعد از پایان تشریفات نخستفضیر گزارش کتبی امور مملکتی را خواند و ابوالحسن با آرامش و بدون دست در هر مورد تصمیم عادلانه و به جایی اعلام کرد که مایه شگفتی خلیفه که در گوشه پنهان بود و جریان را تماشا می کرد گردید قبل از اون که نخست پایان گذارش را اعلام دارد اول حسن رئیس انتظامات و داروقه شهر بغداد را که در کنار نخست وزیری ایستاده بود فرا خاند و گفت با شما کاری دارم همین لحظه با نفرات خود به فلان محله شهر بروید و پیش نماز مسجد آن محله را به اتفاق چهار شیخ دیگر که نامشان را ذکر کرد دستگیر کنید و در میدان شهر چهارصد ضرب شلاق به کفل پیش نماز و به هر کدام از چهار شیخ هم یک ست ضرب بزنید. سپس هر کدام را وارونه روی یک شطور بنشانید و دور شهر بگردانید و جارچی پیشا, پیشا آنها جار بزند که این مردم این است مجازات کسانی که در امور خصوصی و خانوادگی مداخله کند و در میان مردم محل و همسایگان ایجاد آشوب و نفاق کند و مردم را بدنام سازد. عبالحسن ادامه داد بعد از انجام مجازات آنها را از آن محل تبعید کنید و اجازه ندهید تا دیگر به آن محل مراجعت کنند و بلافاصله گزارش انجام ماموریت خود را به آگاهی من برسانید رئیس انتظامات شهری دست خود را به نشانه اطاعت برسر نهاد و دوبار عبالحسن را سجده کرد و در پی ماموریت خود رفت خلیفه هارون رشید که از این دستور بسیار خوشنود شده بود پی بورد که حسن با ریاکاری پیش و و شیخ دیگر مخالف است. بعد از مدت کوتاهی رئیس انتظامات شهری مراجعت کرد و پای تخت سلطان زانو زد و زمین را بوسید و گزارش داد عوامر امیر المؤمنین فورا اجا گردیده و اینک گواهی نامهی معتمدین محلی را آورده که انجام مأموریت را تصدیق کرده اند و تصدیف ای را که در دست داشت به حضور خلیفه تقدیم کرد. حسن تصدیف نامه را گرفت و از متن آن آگاه شد و آثار خوشنودی بر چهره او پلیدار گشت و با خود گفت مردم راستگردار از ریاکاری و ظاهر فریبی این به ظاهر مسلمان آسوده شنند و دیگر کسی با بزم و شادی همسایگان مخالفت نخواهد کرد آنها سزاوار چنین فری بودند خلیفه در تمام این مدت از تصمیمات شدعان حسن راضی و شاد بود دیدجه در مورد سرعت تصمیمگیری او. ابوالحسن از نام و نشان امضاکنندگان که آنها همگی از همسایگان او بودند و آنها را میشناخت فهمید که متن گزارش دلالت بر حقیقت دارد. آنگاه داروغه را صدا زد و دستور داد فوراً یک هزار سکه طلا از خزانه سلطنتی بردار و به خانه ابوالحسن در فلان محله برو و به مادر او بده. غاروق فوراً هزار سکه به طالابخانه ابوالحسن برد و گفت خلیفه این هدیه را برای شما فرستاده اند مادر ابوالحسن با شگفتی فراوان هدیه را پذیرفت و از گوشه دستی خلیف مبهوت ماند غاروق بعد از پایان ماموریت خود به اتاق رای زنان سلطنتی آمد و گزارش داد که سکه ها را به مادر ابوالحسن داده و دستور امیرالمؤمنین انجام گردیده است در این موقع رئیس های قصر به اتاق رایزنان سلطنتی وارد شد و به وزیران امیران اشاره کرد که جلسه پایان پذیرفته و رایزنان هم هر کدام بعد از دیگری اتاق انجامن را ترک گفتند. ابوالحسن بعد از از تخت به زیر آمد و رئیس خارجهها مانند دفعه پیش زیر بازویش را گرفت و به تالار دیگری راهنمایی کرد. خلیفه از مخفیگاه خود خارج شد. و نخص وزیر هم برای گزارش رویدادهای روز که خلیفه خود شاهد آن بود به سراغ خلیفه رفت. بعد از چند دقیقه رئیس خاجه ها و نخص وزیر ابوالحسن را به ساختمان زیبایی که اندرون نامیده می میشد و در آنجا صفری گسترده بودند راهنمایی کردند. در اینجا بانوان جوان زیبا مشغول نوازندگی سازهای خود بودند و خلیفه قلابی هم از ترانه ها و آهنگ‌های دلپذیر شاد و شنگول شده بود و با خود می گفت چقدر این رویا طولانی؟ است اما نه این رویا نیست است زیرا حس می کنم می بینم راه میروم و می شرمم. هر هرچه که باشد مهم نیست من به خداون توکل می کنم دیگر تردیدی ندارم که خلیفه ی واقعی هم. زیرا هیچ کس دیگری در دنیا از این همه نعمت شکوه جز من برخوردار نیست احتراماتی که به من نشان می دهند و اطاعتی که از های من می‌شود دلیل کافی بر این امر است. خلاص ابوالحسن کاملا باورش شده بود که خلیفه است. وقتی او را به اندرون راهنمایی کردند، هفت دست بانوان زیبای نوازنده را دید که در اطراف تالار اندرون مشغول نوازندگی‌اند. های بسیاری از سقف به سوی زمین تالار آویزان بود که همه آنها از طلای ناب تهیه شده و با های آبی و طلایی دردوی خاصی به تالار بخشیده بودند در وسط تالار سفره بزرگی گسترده بودند که بشقاب‌های از طلای خالص و دیس‌های زرین روی آن جای داده بودند هفت بانوی جوان با لباس های بسیار گرانبها و رنگین گرداگرد این سفره که نایاب‌ترین و لذیذترین خوردنیها در آن دیده میشد، ایستاده بودند هر کدام از آنها باد بزنی در دست داشتند که اول حسن را هنگام سفر شامباد می زدن. اول حسن در این تالار با که زیبایی های در و دیوار و نقاشی های سق و اشیاء نایاب نفیس چشف را خیره می کرد. هر گامی که بر اول نگاهی به یک سو می کرد و از دیدنی های کم نظیر مدر در تالار مقود می شد و بعد نگاهی به سوی دیگر می انداخت که بر میزان حیرتش افزوده می شود. و آثار بخت و گیجی در سیما و چشمان او نمایان بود خلیفه هم که در کنج پنهان شده بود غیافه بحزده ابوالحسن را میدید، و از شدت خنده بیتاغت می و قاه قاه می خندید که توانست ابوالحسن را آنچنان دچار پریشانی فکری کند چشبانوی زیبایی جوان هم که او را باد میزدند با زیبایی و دلروبایی های خود بیشتر بر بخت و شگفتی او می افزودند تا جایی که ابوالحسن به آنها گفت فقط یک نفر او را باد بزند و از شش نفر بقیه در هر سمت او سه نفرشان نزد او بنشینند، و شون سفره گرد بود با این ترتیب میخواست چشمان خود را به هر طرف که میگرداند با ماهروی روبرو شود بانوان زیبا هم اطاعت امر کردند و ابوالحسن از آنها خواست که با او هم غذا شوند. بعد با بیان بسیار معدبانیی نام هر یک از آنها را پرسش کرد و آنها به ترتیب پاسخ دادند گردن بلوری گلگونلب ماهمنظر خورشید و نیشکر و افزونگر ابوالحسن با هر نامی که میشنید سخنان شیرین و دلپذیری به آن مناسبت میگفت و آنقدر مناسب و دلخواه بود که خلیفه با شنیدن آن سخنان احترام بیشتری برای ابوالحسن در قلب خود حس کرد. همین که بانوان دیدند حسن از اثر سفره برخواست، یکی از آنها به رئیس خواجه‌ها گفت: "خلیفه میخواهند برای صفحه دسر، متالار دیگری تشریف ببرند. آب برای شستن دست و دهانشان بیاورید." فوراً آفتابه و لگن طلا آوردند و یکی هم تمیز به همراه آورد و در برابر ابوالحسن زانو زد تا دستهای او را که با آب شده بود خشک کند. یکی دیگر در تالار را گشود و آبلحسن داخل گردید. این تالار به همان وسعت اولی بود و همان شکوه را هم داشت. هفت گروه نوازندگان به محض ورود ابوالحسن شروع به نواختن آهنگ بسیار لطیفی نمودند. در تمام مدت که آهنگ به گوش می رسید، در اینجا انواع میوه جاده که به صورت تلی در روی میز جای داده بودند دیده می شود. و همچنین انواع خوشبار و شیرینی. در هفت قاب تلای زیبا تهیه شده بود و هفت دوشیزه زیبا که زیباتر از هفت بانوی زیبای قبلی بودند باد بزند در دست آماده خدمت بودند در اینجا ابوالحسن شگفتی بیشتری از خود نشان داد و در برابر هفت دوشیزه ماه پیکر ایستاد و مدتی آنها را نگاه کرد و گویی میخواست بفهماند که نمی‌توان گفت کدام از آنها زیباتر از دیگری است عاقبت به فکر رسید همه آنها در زیبایی با یکدیگر برابرند و به همین جهت از همه آنها خواست در دو طرف او بنشینند و با او همراهی کنند و زندن گفت چون هوا گرم نیست احتیاج به باد ندارد بعد از اون که دوشیزه های زیبا دور اول هفتن زدند نام هر خودم از آنها را پرسید که با نامهای قبلی تفاوت داشت آنگاه به آنها تعارف کرد و انجیری به دهان دلربا با گذاشت که در سمت راست او نشسته بود و از نگاه اول دل ابوالحسن را به زنجیر کشیده بود سپس به یکایی که آنها میوهی داد با این ترتیب تفریح هارون و رشید که نظارگر این حالات بود به اوج خود رسیده بود بعد از اینکه که از همه میوه های داخل قاب چشید او را به تالار سوم راهنمایی کردند که با شکوه تر از دو تالار قبلی بود در این تالار هم نوازندگان با همان تعداد قبلی دیده می شدند و صفحه گسترده انواع میوجات و شیرینی و خوش را در خود جای داده بود موسیقی همچنان مترنم بود و هفت دو چیزه زیبایی متفاوت با بانوان قبلی داره عبالحسن را گرفتند ابوالحسن با زیباترین آنها به سخن گفتن پرداخت و نام آنها را جویا شد و بابا با نزاکت و شیوه مطبوعی بانهان سخن گفت از هم صحبتی بانهان با لذت می‌برد. در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید حسن را به تالار چهارم بردند که این تالار از هر جهت با تالارهای قبلی برتری داشت شمدان و چتراخ‌های بزرگ همه تالار را غرب در نور کرده بودند و ترلوه پرته نور جلوی تالار را چند برابر می کرد